چهار شاهزاده خانوم و سربازی به نام آرمانیوم پادشاهی بود که چهار دختر داشت هر یک از دیگری زیباتر و با شخصیت تر روزی پیرزن پیشگوی پیشکوی دربار پیشگویی کرد که پیش از رسیدن کوچکترین دختر به سن چارده سالگی عبر سیاهی آسمون قصر رو میپوشونه و دخترا رو با خودش می بره این پادشاه نگران از اون پیشگویی فرمان داد سراسر کاخ رو با قفل و زنجیر مسدود کنن. جلوی هر در نگهبان گذاشت و دختر دیگه اجازه نداشتن حتی به باغ قصد هم قدم بذارن. پادشاه بی در انتظار چهاردهمین سال تولد دختر کوچیکش بود و سالها و ماها به سرعت برق و باد گذشت تا شاهزاده خانم کوچیک به چارده سالگی رسید ولی نشانی از عبر سیاه دیده نشد. با اومدن روز معود و به خیر و خوبی گذشتن اوزا پادشاه به این نتیجه رسید که حرف پیشگوی پیر خرافات بوده و زندونی کردن دخترا با هیچ عقل و منطقی سازگار نبوده. بنابراین اجازه داد که اونا آزادانه توی باق قصر رفت آمد کنند. از قضا تا شاهزاد خانما به باغ رسیدند ابر سیاهی برای چند لحظه آسمان قصر رو پوشوند و با رفتن ابر شاهزاده خانما هم از نظرها محو شدهاند پادشاه آه و ناله سر داد که چرا حرف پیشگوی پیر رو سرسری گرفته و یک روز بیشتر دندون روی جیگر نگذاشته قافل از اون که کار از کار گذشته بود و شاهزاده خانوما مثل آب به زمین فرو رفته بودند چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که پادشاه با نظر مشاوران خود اطلاعیه‌ای صادر کرد و توی اون از جوونای دلاور و شجاع دعوت کرد که برای پیدا کردن دختراش خودشون رو معرفی کنند جایزه کسی هم که توی این راه موفق میشد، ازدواج با یکی از اون دخترها بود جوانان قوی و با شهامت زیاد بودند ولی اکثرا توی حرف و ندر عمل اونا دست دسته دست به قصر می آمدند، اسبی و کیسه ای پر از پول می گرفتند و به دنبال دخترا می رفتن، ولی دست از دست پادرازتر برمیگشتند. تا بالاخره روزی سه پسر پادشاه کشور همسایه از اطلاعیه با خبر شدند. اونا به سرعت به حضور پادشاه اومدن و گفتند ما اومدیم دختره شما را پیدا کنیم. این کار تو یک سال و یک روز انجام میشه. مطمئن باشید که اونا رو نزد شما میاریم. ما پسران پادشاه همسایه ایم خواهش میکنیم روی قولی که میدیم حساب کنید. پادشاه گفت ای شاه عزیز آدم زیادی اینجا اومدن و به من قول دادند که توی یک سال و یک روز دخترامو به من برگردونند. ولی به عهدشون وفا نکردن. امیدوارم شما توی این ماموریت مهم ورزشمند رو سفید و موفق باشید. شاهزاده ها تند و تیز به سوی محل غروب آفتاب که عبر سیاه و شاهزاده خانم تو اونجا محو شده بودن تاختند. که با پیرزن گوش پشتی روبرو شدند پیرزن گفت جوانای عزیز اینجا پی چه کاری اومدید؟ شاهزاده ها با تندی گفتند: این به ما رب داره و به تو اصلا مربوط نیست پیرزن گفت به راهتون ادامه بدید ولی توی مهمون خونه کنار جنگل توقف نکنید شاهزاده به راهشون ادامه دادند تا به جنگل بزرگی رسیدند. جلوی جنگل مهمون ای بود که از داخل اون صدای ساز و آواز و قهقهه مستانه به گوش می رسید. اونا با نادیده گرفتن حرف پیر زن، از اسب پیاده شدن و برای استراحت و صرف غذا وارد مهمون خونه شدن. یک سال و یک روز توی اونجا موندن و دار و نداره خودشون رو از پول گرفته تا اسب و اسلحه خرج کردند و گرو گذاشتند. یک سال موندن توی مهمون خونه مثل یک روز گذشت ولی از اون طرف برای پادشاهی که از دوری دختراش صبر و قرارش رو از کف داده بود صد سال گذشت توی مهمون خونه تنین ساز و آواز و خنده های مستانه گوش فلک رو کر کرده بود ولی تو قصر پادشاه غم و اندوه و آه و ناله از در و دیوار میبارید. پادشاه دیگه امیدی به زنده بودن دخترها نداشت چون که میدید که پسرای پادشاه هم موفق به این کار نشدن کس دیگه هم داوطلب انجام این کار نیست تو روزهای یأس و ناامیدی یکی از خدمتگذارای پیر پادشاه قدم پیش گذاشت سربازی باز نشسته که یک دست و یک پای خودش رو توی جنگ از دست داده بود و تمام هست و نیست و زندگیش یک پای چوبی و یک شمشیر زنگ زده بود و حالا به عنوان یکی از خدمت گذارای دربار پادشاه انجام وظیفه می کرد. آرمانیوی باوفا که طاقت دیدن ناراحتی پادشاه را نداشت در کمال جسارت به حضور پادشاه اومد تا به دستور اون به دنبال دخترا و سه شاهزاده گم شده بره. پادشاه در کمال غم و اندوه وقتی حرفای آرمانیو را شنید به خنده افتاد و گفت آرمانیو، وقتی این همه جوان دلیر و توانا نتونستن کاری بکنن، پا پیش گذاشتن تو واقعا خنده داره. آرمانیو جواب داد، پادشاه ها، زود قضاوت نکنید. من اگه تو این راه کشته بشم و به جایی نرسم، دست کم، بیش از این شاهد چهره غمگین و نگران شما نخواهم بود، ولی اگر پیروز و موفق بشم شادی رو به شما برمیگردونم. پادشاه وقتی اصرار بیش از حد آرمانیو رو دید با رفتن اون موافقت کرد و دستور داد کیسهای پر از طلا در اختیارش بذارن. آرمانیو بامدادان کوله سربازی رو به پشت و شمشیر کهنش رو به کمر بست و سفر پرمهاجرای خودش را آغاز کرد سفر به محل غروب آفتاب، همون جایی که ابر سیاه و شاهزاده ها توی اون ناپدید شده بودند. توی کوله پشتیش مقداری نون و کیسه پر از طلا گذاشت. اون رفت و رفت تا بین راه به پیرزن قد ای رسید. پیرزن گفت کجا میری ای سرباز؟ آرمانیو جواب داد به جستجوی شاهزاده خانم‌ها، دخترای پادشاه. پیرزن گفت برو ولی توی مهمون خونه کنار جنگل توقف نکن به جنگلم که رسیدی مواظب باش که توی اونجا قصری متروک هست و توی اون قصر چاه عمیقیه که گم شده های تو اونجا هستن سرباز از پیرزن تشکر کرد و راهش ادامه داد تا به جنگل بزرگی رسید جلوی جنگل مهمون خونه بود که از داخل اون صدای آواز به گوش می رسید. تو این لحظه مهمون خونه دار سه نفر از مشتری هایی رو که حساب خودشون را نداده بودند بیرون انداخت. آرمانیو حد زد که این سه نفر احتمالا پسرای پادشاه کشور همسایه باشند. از قضا حدسش درست از آب درآمد. بنابر بنابراین با پول خودش، اسباب و اسلحه اونا را از گروه مهمون خوندار در آورد و به اتفاق اونا به جستجوی شاهزاده خانم رفت شهزاده سوار و آرمانی و پیاده جنگل ساکت و محالود بود و در فاصلهی دور پنجره های یک قصر باشکوه به چشم میخورد. اونا به سوی اون قصر رفتن به اونجا که رسیدند همه چیز فراهم بود تختها مرتب بود، میزا چیده شده بود، آتیش اجاق آشپزخانه روشن و تنها یه نفر باید دست به کار میشد و غذا میپخت. آرمانیو گفت: بهتره یکی شاهزاده ها توی قصر بمونه و آشپزی کنه. بقیه‌مون میریم دنبال شاهزاده خانوما تا جنگل رو زیر رو کنیم. همه موافقت کردند. شاهزاده بزرگ توی آشپسخانه موند و به آماده کردن کباب قاز مشغول شد. دو برادر دیگه و آرمانیو هم به جنگل رفتن. هنوز نیمی از پر قازا کنده نشده بود که رد و برق شروع شد. شاهزاده سرش را بلند کرد قول وحشتناکی با گرزی توی دستش جلوی اون ظاهر شد. تن شاهزاده مثل بیت می لرزید. قول نهر زنان با گرز به شاهزاده حمله کرد و گفت فهمیدی که به خونه قول پا گذاشتن یعنی چی؟ شاهزاده جواب داد ببخشید آقای قول نمیدونستم اینجا قصر جنابالیه کسیم نبود تا از اون اجازه بگیرم آرمانی و شاهزاده ها شب به قصر برگشتند ولی به جای قاض سرخ شده با اتفاق غیر ای روبرو شدند. شاهزاده نقش بر زمین شده بود آه و ناله سر داده بود و از شدت درد به خودش میپیچید شاهزاده ها به پرستاری از برادرشون مشغول شدند و سرباز هم به آشپزی پرداخت روز بعد نوبت شاهزاده دوم شد تا برای آشپزی توی خونه بمونه این بار هم با اومدن شب قاضی سرخ نشده بود چرا که برادر دوم هم مثل برادر بزرگ بر زمین افتاده بود و از درد به خودش میپیچید سرباز پیر و برادر کوچیک از شدت تعجب شاخ درآورده بودند ولی برادر بزرگ که داستان را میدونست لب از لب تکون نداد روز سوم برادر کوچیک توی قصر موند اون قول داد قاضی رو که روز قبل توی جنگل شکار کرده بودن رو سرخ کنه و شام مفصلی تهیه کنه ولی این بار هم با اومدن شب قاز خام بود و شاهزاده گریون و نالوم روی زمین داشت لول می‌خورد. روز چهارم نوبت به آرمانیو رسید. تا خواست آشپزی رو شروع کنه و گاز رو سرخ کنه قول بیشا خودم رو مقابل خودش دید که نره میزد. تو کی هستی و با چه جرعتی به قصر من پا گذاشتی؟ آرمانیو جسوران پاسخ داد من سرباز بازنشسته آرمانیو هستم و برای انجام معمولیتی مقدس به اینجا آمدم. قول فریاد زنان گرزش رو چرخوند و به آرمانیو حمله کرد. ولی اون خونسرد و آروم شمشیر کهنه و قدیمیش رو که همیشه به کمر داشت از غلاف بیرون کشید و قول رو نقشه بر زمین کرد. قول ترسید و فرار کرد. و توی چاه پشت قصر غیب شد. با اومدن شب و برگشتن شاهزاده از جنگل، آرمانیو با روی خوش به اونا خوش آمد گفت. روی میز پر از غذاهای گرم و خوشمزه بود و گرز قول هم گوشه سالن افتاده بود. اونا میدونستند چه اتفاقی افتاده ولی لب از لب تکن ندادن چرا که بیم اون رو داشتن که آرمانیو اونا را مسخره کنه. صبح روز بعد آرمانیو اونا رو بیدار کرد و گفت ما که تمام جنگل رو دنبال شاهزاده ها گشتیم ولی از اونا نشونه پیدا نکردیم بهتر داخل چاه پشت قصر رو هم ببینیم چه کسی حاضر تو این راه پیش قدم بشه و داخل چاه بره؟ برادر بزرگ گفت من من آمادم آرمانیو سبد بزرگی که تناب محکمی به اون بسته شده بود رو برداشت و به اتفاق شاهزاده ها سر چاه رفت شاهزاده بزرگ توی سبت نشست و آرمانیو و شاهزاده های دیگه اون را آروم آروم به ته چاه فرستادن و به اون تذکر دادن که اگه ته چاه با شرایط نامناسبی روبرو شد تناب رو تکون بده تا بالا بکشنش توی تاریکی وحشتناک اعماق چاه ناگهان باد شدیدی وزیدن گرفت شاهزاده تناب رو تکون داد و بالا اومد. بعد از اون نفر دوم شانس خودش رو امتحان کرد. اون از باد شدید و تاریکی نمی ترسید. ولی همین که آب چاه رو زیر پای خودش دید از ترس غرق شدن توی آب تناب رو تکون داد و بالا اومد. حالا نوبت برادر کوچیک رسیده بود. اون از تاریکی و آب و باد حراسی نداشت. ولی با دیدن شعله های آتش ته چاه از وحشت سوختن توی آتیش تناب رو تکون داد و تقاضای بالا اومدن کرد. سرانجام آرمانیو با پاهای چوبی خود توی سبد نشست و گفت حالا نوبت منه که شانسم رو امتحان کنم. شاید شانس من بیشتر باشه. شما اینجا بمونید تا چنانچه شاهزاده خانم رو پیدا کردم اونا رو بالا بکشید. آرمانیو به داخل چاه رفت و شجاعانه از ظلمت، آب، آتش و باد گذشت. زمانی نگذشته بود که احساس کرد زیر سفت شده. توی تاریکی اون چاه نور ضعیفی ته راه رو سوسو میزد. سرباز شمشیر کهنه خودش رو در دستش گرفت و به سوی نور رفت. نزدیک که شد دری برونزی به چشمش خورد که نوری از اون بیرون می اومد در و باز کرد نابابرانه اتاق زیبا و بزرگی دید که توی اون یکی از دخترای پادشاه جلوی آینه نشسته بود دختر با دیدن آرمانیو از شدت خوشحالی سر از پا نمیشناخت ولی به علامت سکوت انگشت بر لب گذاشت و با دستش در دیگه رو نشون داد دری نقره ای رنگ آرمانیو اون رو باز کرد وارد اتاقی شد که از اتاق قبلی زیباتر بود و توی اون اتاق آینه‌ای بود که دختر دوم پادشاه مقابل اون نشسته بود و موهاش رو شونه می کرد. دختر با دیدن آرمانیو هیجان زده در دیگه ای رو نشون داد که از طلا بود و به اتاق سوم راه داشت که توی اون اتاق دختر سوم پادشاه مقابل آینه نشسته بود و آرایش میکرد. شاهزاد خانم سوم آخرین در را به سرباز نشون داد که از کریستال بود. وقتی که آرمانی اون رو باز کرد زیباترین اتاق قصر زیرزمینی در برابر چشماش ظاهر شد. دختر کوچیک پادشاه، پی اون اتاق جلی آینه نشسته بود و سر قول رو که روز قبل به دست آرمانیو از پادر آمده بود رو برزانو گرفته بود. آرمانیو وارد اتاق شد. شاهزاده خانم سرش رو برگردوند و حیجان زده فریاد زد. تو این لحظه قول از خواب بیدار شد. سرش رو بلند کرد و با عصبانیت نعرهی کشید. ولی قبل از اون که به خودش بیاد آرمانیوی شجا، با یک ضربه شمشیر سرش را از تنش جدا کرد. حالا همه شاهزاده خانم‌ها آزاد شده بودند. شاهزاده خانم کوچک به رسم قدردانی پیشانی آرمانی رو بوسید، ولی سه خواهر دیگه با اون رفتاری معمولی داشتن، چرا که اون رو به چشم سربازی ساده نگاه کردند که یک دست و یک پا هم نداره و نه به عنوان قهرمان نابودکننده قول. آرمانیو شاهزاده خانوما را یک به یک به طرف سبت راهنمایی کرد قبل از همه بزرگترین دختر را توی سبت نشوند و تناب رو تکون داد تا بالا بره بعد از اون به ترتیب نوبت خواهر دوم سوم و چهارم رسید ولی وقت نوبت به خود آرمانیو رسید شاهزادهها از پایین فرستادن سبد امتنا کردند شاهزاده خانمای بزرگ به این معترض نبودند ولی شاهزاده خانم کوچک از ته دل ناراحت بود و از دستشم کاری بر شاهزاده شاهزاد ها و شاهزاده خانوما توی قصر سلطنتی مورد استقبال گرم قرار گرفتند. پادشاه بلافاصله دستور داد مقدمات عروسی را فراهم کنند. همه خوشحال و خندوم بودند به جز خانم کوچیک که داشت گریه و ناله میکرد. چهار ساعت کنار پنجره میرفت و گویی در انتظار اومدن کسی لحظه شماری میکرد. اون شب و روز تو فکر آرمانیو بیچاره بود. آرمانیو کمی صبر کرد تا شاهزاده سبد رو پایین بندازن، ولی خیلی زود متوجه شد که اگه تا قیامت هم صبر کنه خبری نیست بنابراین به قصر زیرزمینی برگشت توی اولین اتاق مقابل آینه وایساد که شاهزاده خانم بزرگ کنار اون نشسته بود با نگاهی به آینه احساس کرد که آینه داره اون رو مسخره میکنه به خودش نگاه کرد گوشاش دراز شده بود و ناراحت بود با شمشیرش چنان به آینه زد که تکه تکه شد ولی با کمال تعجب نه تنها خرد شیشه ها بر روی زمین نریخت بلکه تاجی از برونز و شنلی برونز دوزی شده نیز در مقابل پاش افتاد. آرمانیا با خودش گفت دنیا و زرق و برق دنیا به چه درد من میخوره وقتی نمیتونم از این زندون سرد و تاریک بیرون بیام. آرمانیو با گفتن این حرف افسرده و نگران به اتاق دوم رفت و مقابل آینه وایساد. آینه اون رو با دماغی دراز نشون داد. شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و آینه رو تکه تکه کرد. با کمال تعجب علاوه بر تکه پاره های آینه تاجی نقره ای رنگ و شنلی نقره دوزی شده جلوی پاش افتاد. با خودش گفت آخه اینا چه فایده ای داره؟ وقتی من مثل یک کرم توی این زیرزمین دارم لول می‌خورم. سرباز این را گفت و افسرده و غمگین به اتاق سوم رفت توی آینه نگاه کرد دو شاخ بزرگ بر سرش سبز شد آینه را خورد و خمیر کرد و جلوی پاش تاجی از طلا و شنلی تلا دوزی شده افتاده بود سرباز به گریه افتاد اون همه تاج و شنل گرانبها و زیبا داشت ولی نمیتونست از اونا استفاده کنه و همشون آتل و باتل مونده بودن. بالاخره تصمیم گرفت آینه چهار چهارم را رو هم امتحان کنه با شکسته شدن آینه تاج کریستال شنل کریستال و امپراتور جهان در برابرش ظاهر شد یک سوت کوچیک هم کنار اونا بود سرباز خم شد سوت رو برداشت و توی اون دمید صدایی از اون به گوش رسید چه دستور می دهید ای امپراتور جهان؟ سرباز تعجب کرد چه دستور می دهم؟ دوست دارم که دوباره جوان و سرحال بشم مثل اون زمان که برای اولین بار به جنگ رفتم با گفتن این حرف آرزوش برآورده شد به جای پای چوبی پای از گوشت و پوست داشت و دستی سالم جای دست بریده شدهش رو گرفت سرباز نمی دونست خوابه یا بیدار شنل امپراتور رو روی دوش انداخت. تاج رو بر سرش گذاشت و به سود دمید. بلافاصله فاصله باز هم صدایی به گوشش رسید. چه دستور می دهید، امپراتور جهان؟ آرمانیو با خودش گفت چه دستور می دهم؟ دستور می دهم تمام این قصر روی زمین بشه و توی اونجا کالسگی با خدم و هشم در انتظار من باشه. در یک لحظه تمام قصر بر روی زمین اومد و شش به بسته شده به کالسکه تلایی شیخ زنان تو محبت باز شیهه میکشیدند. امپراتور جهان توی کالسکه نشست و کالسکه برافتاد. فکر میکنید مقصد کجا بود؟ مقصد جایی نبود جز سرزمین ولی نعمت قبلی که توی این وقت، در تکاپوی تهیه مقدمات عروسی بزرگی بود. عروسی سه شاهزاده با سه شاهزاده خانومی که اونا را نجات داده بودند. تو این لحظه پیکی خبر داد که امپراتور جهان در حال آمدن به سرزمینه. به دستور پادشاه با آماده شدند و مراسم استقبال برگزار شد. امپراتور با کبکبه و دبدبه تمام وارد شد و عروسی، با شکوه هرچه تمامتر ادامه پیدا کرد همه توی شادی و سرور بودند، ولی از همه خوشحالتر ست تا داماد بودند که از جسارتهای قهرمانانه خودشون تعریف می‌کردند. تو این زمان امپراتور جهان قصه خودش رو با آب و تاب تعریف کرد و همه به احترام اون ساکت موندن آرمانیو گفت حالا که شما از قهرمانی‌ها و های خودتون گفتید منم اجازه میخوام حرفام رو بزنم. خوب توجه کنید. سربازی بود که از روی وفاداری به سوگند خودش در راه پاسداری از شرف و عزت کشور یک پا و یک دست خودش رو توی جنگ از دست داد. ولی از اون به بعد به عنوان خدمتگزار پادشاه خدمت میکرد و در وقت ناپدید شدن دخترای پادشاه برای یافتن اونا چه جانفشانی هایی که نکرد. پادشاه و دختراش با علاق مندی به حرفهای امپراتور جهان گوش میکردند ولی شاهزادهها از ترس بازگو شدن ناگفته های خطرناک رنگ از رخسارشون پریده بود شاهزاده خانم کوچیک گفت آیا اون تونست دخترای گم شده پادشاه رو پیدا کنه امپراتور جهان با بیان شرح قصه از جمله چگونگی رفتنشون توی چاه و کشتن قول و خیانت شاهزادهها و رها کردن اون توی چاه گفت بله مگر نشنیدید که جوینده یابنده است اون سرانجام موفق شد راه رو پیدا کنه. پادشاه پرسید ای امپراتور بزرگ نام اون سرباز چی بود؟ آرمانیو با افتخار گفت نام اون آرمانیا که الان مقابل شما نشسته. شاهزاده ها با شناختن آرمانیا به پای اون افتادن و خواستن که اونا را ببخشه. آرمانی آرمانیوی قهرمان و شجاع همون که خصلت قهرمانانه اونا رو بخشید مراسم عروسی به خوبی و خوشی ادامه پیدا کرد و به سه عروس و داماد قبلی عروس و داماد چهارم هم اضافه شد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها